راژیو فیلم زمستانه وسط یک جادی کوهستانی مردی ایستاده که پشتش به ماست یک کلاه مشکی سرشه و یه چفیه دور گردنش با برکوت ارتشی سفترنگی پوشیده دوتا مردم از دور دیده میشن که ایستادن وسط جاده مرد بر داره سیگار روشن میکنه ماشین تویوتای مدل بالایی از دور داره میاد ایست بازرسیه زن پشته فرمانه مرد نگهبان به زن و مرد نگاه میکنه یه چن تا با آدم بگو بله ادریکتو لطفه نیست مداره. چی میخوای به تو مردی میگم اینجوری دستو بزگ خجالت بکش شما مردی مردم, مردم که چطور تو این برهود حالم داره به هم میخوره دکان منو میزنی مهتره بله از کجا میای شما از قبرستون آقا جون از قبرستون من میریم قبرستون دیوونهس قابلش کنه از کجا تا میاریم؟ از شهر اگه بگه صبح الان باش بر عزوره کجا رو سوال منو درم میگم دروغ میگم میخوای دروغ بشنوی آروم صفت کنیم آروم, آروم, آروم صفت بکنیم یعنی چی پچ پچ کنم سفر بلشم این همی جوریه همی جوری همی جوری کردی آرومه در چشک یا یعنی ایوان آب خونک به خوچار تا سلوات بفرست درست آب یعنی چی از از پونسد کیلومتر رومخ من اینه میگه این واسه من اون کار کرده اون این کار کرده این اون کرده که کرده واسه من که نکرده یکی با بابات بره کار بده یکی به ننک بره کار بده خودت حسابشو بکن که سر 500 کیلومتر راهه اگه چیز باشه چیز؟ اگه چیز باشه زر نذ موبایل اتبا. رو به بیرون پرت میکنی چرا اینجوری میکنی نوانی تو نوانیم زاخیر میشی میدی تو بالای موبایل میگردی من واقعا شرمنده سرکار چه بکیرینم کوشا انداختی اینو سرکار این موبایل منو بگیره 0112 شما اول گواهی رو بدی من ببینم گواهی نداره که چی دارم بهت میگم این گواهی نامه اصلا نیست نمیدونم گرفته قبرسونی نمیده چی, چی رو پس نمیده. نمیده چی, چی رو پس بدم تا سره داشتی نداشتم بگه نداشتی نداشتم. نداشتم چی چی دارم رو, رو. همین رو میگن دیگه دست دست بله. تو مگه نمیگه دست مگه نمی دسته من بایسه سرجان خب بیاه بگرد بیره بایسه بیاه بگرد سکون اقوان بگرد بگرم اسلحه ی راهی جیسشو به طرف مرد میگیره. اینهاش، اینهاش. هاش اینا هاش دور سوار شو سوهل جون مگفون به بله. زن خیله شده بله بیشگذر تو کارتو باید چرا زنی نمی به حکم آتیش داری مارت سیپری به لب می زاره چه برای فنده نگه با فنده که شو میده به مرد بی بار تو ماشین بارو سابرشون من یه عشق نرم لینا رو دارم نه این زندگی رو نه چیزی. آ همینجا میمونم. مشکل چیه برادر من؟ مشکلش پوله سرکار. پول؟ <تصفح> پول که بابا عممون گدایی. ولن شو. ولن شو مسخره بازی در نیار. سرکار. این زمین خداست منم بنده خدا. حالا کی چیکار استی به فلان. اجازه استفاضیه مرد حسابی. ولن شو بهت میگم. صاف کن آقا. مرد نشستی. صاف کن علی ورسی. میلی میلی طرف صندوق عقب باش. الان درستش میکنم. آقا درستش می‌کنه. اینا اینا پرت می‌کنی طرفی نگهبان. کلی اسکلت پخش زمین میشه. بیا بزار آقا اینا تقسیم کنی بین خودتون. اینا چیه خانم؟ فکری یعنی خیارمه. خدامون میدونه. ما دفعه میری یه نایلون دیگه پرت می‌کنی رو زمین. این پول چیه؟ یکی دیگه. بیا مشکلت همین بود؟ یکی دیگه. مشکلت همین بود؟ نگهبان میشه زمین اسکلت رو جمع می‌کنه. نفرما. آخ، خلاصو. تو وقتی. حرکت می‌خوام. استاد دوباره ماشین، از کس کسای استرس. دیگران میرن دنبالش. با خنده از سوی آینه جلوییش نگاه می‌کنه. مردم ریسه می. بازی ساده کارگردان مانی حقیقی نویسندگان مانی حقیقی امیر رضا کوهستانی تهیه کننده مانی حقیقی محصول سال 1390 بازیگران ترانی علی دوستی مانی حقیقی سعید چنگیزیان اسماعیل خلج صابر عبر محمد عاقبتی قربان نجفی نقی سیف جمودی باشه منم بعد دستا. منم گرفتار چیزی؟ بعد گرفته باشه دیگه. این فیلما رو کجا سیو می‌کنه؟ چونیه که عکسی بالا آپلود گردون داره. آره. آره. هالیوودی. اینجا هالیوودی. موبایل رو انداختم اشی موندم گفتم یا خدا این باز زرد کانال دو. بعد دستم بندازم اشی انداختم اش دیگه. یارو داشت را سکی با... من ترسیدم گفتم الان میزنه اول باید اختار بردار کسی بگه چون هم ایست فلان. همینجوری نیست که سبت مرحله داره چونه <تصفح> <تصفح> چونه <شور> خوب ما <تصفح> یفتاده خوبه خوبه که باید معلوم بشون ما توشیم میگی موبایلم دوازن میده که اینه ما توش نیستیم رفتی به پیکسل دورمین نداره الان مشکلش نه که واضح نیستیم ما توش نیستیم. والا مشکلش اونه که هم واضح نیست و هم معلوم نیست این که توش ما این بابا صدامون هست معلوم ما این کیسه هم هم هست حل ندیگه این کیسی معلوم برداشتم معلومه, معلومه. ایناش. هاش منم از همون برداشتم نه تو از اون برداشت منم از مگه تو دوتا نریختی یکی نریختی تو توریختن تا. اگه حواسم بود 4 تا بشه. پیس من نه دیگه بیشتر به اون پسره میفروخ. پس یعنی من 24 رو 25 انداختم. یعنی تو باید 26 رو 27 رو باشی که 27 الان اینجا چه وضعی این پوش؟ خب شاید فقط سه تا تا تا بودن دیگه. دو تا سر باجی من انداخت. بود. من حواسم بود چهار تا بشه. نه بیا نکن اینهاش نکن. ماشین رامی یافت؟ آشنای معلم چهار تن داشتی؟ نه زن به موبایل نگاه میکنه در صندوق برم میبندی میری طرف مرد براش تندک میزنی. وای وای وای سیگار وای وای وای وای وای وای وای وای اول دارم پودارو بزرش کنم دوباره دیدونشون چی؟ پول خیلیاته دیدونه چی؟ کمک مستعظفی نه آره فقط میگم چلانچه چی خوهربازی دارو بردیم این کمک و این آدم میرفت کمک میکردیم ما حقی نارته بروش شکایت کنم بگه به زور ما پودارن اینا فرق نشد کنم دوباره بینشونم امراه برو خودشون بیارن فرق بات سرکو محلیات محلی بنشیم تا میشه. نسیدم به یک گروپ از خانه پیارده میشن مرد موبایلشو روشن میکنه زهن کیسه پول به دست میره طرف یک کپر پلاستیکی که پیرمردی کنونش ریستنده لیلا ها این رو عکس گرفتنه اون پایین سمت یه دکمه داره میره رو فیلم بردادی شد آره درست سلام آجا قا. سلام علیکم خوش آمدن عرض کنم که کسی پولو رو روی نیم کرد آه؟ آره. بره بس بسایی اسکناس سه هزار تومانی رو بیرون میاره اینا چی؟ بری میگیری حاجی بشین اینجا بشین برای دوربین دست کن بده پیلمت دست کن بودی خوبه؟ حاجی از خانم تشکر کن بگو ممنون ایشالا زود خوب بشین خدا همه مریضا رو شفا بده ممنون آجا قد لطف خانم اینا چیه؟ چی چیه؟ اینا نزده دیگه که این پوله بله پوله پول نظره شما از کمیته امداد هستیم؟ نه اه... ما از کجاییم؟ از کمیته امدادیم؟ نه ما باز خودمون کار میکنیم اجا ما باز خودمون کار میکنیم من احتیاج ندارم احتیاج ندارین؟ نه همینقدر که اینجا در میارم کافیمه ببریم بدیم به محتاجش زن حرکت میکنه بازشت. که بره آقا بیا تعبیل بگیر پایشتا خانم کجا؟ ببین امو جان شما دللت چور بقیه رو نزنه خب انقدر آوردیم که به همه برسه نه خب حالا عبی نداره اینم ببرین به این همه تقسیم بکنین به هر کسی یه ذر بیشتر می دیگه. آقای محترم شما نمیخواد کار خودمون رو یاد خودمون بدی. خب این پولا تقسیم کردنش حساب کتاب داره همینجوری تو کیسه نکردن که شماره رو ببین رو کیسه ببینیم کیسه شما کیسه شماره رئیسیه تححلویل گرفتی فیلم شما کردی الان میخواید پسش بدی همه حساب کتاب هم به هم بریه. کار این چی میگه حالا چرا ناراحت میشی آدم که داره کار خیر میکنه که اینقدر زود عصبانی نمیشه که مشتی نذری رو برنمیگردونن درسته همین که رو نذر کرده بعد بگیری بگی دست درد نکنه فاتحه بخونی و سلام نوشه جان غیر از اینه ارث کردم غیر از اینه خیلی خوب حالا برای اینکه ناراحت نشی من یکی از اینا رو برمیدارم یه عده 1000 تومانی جدا میکنی یادگاری میذارم همین خوبه من چی نشم من ناراحت نشم من, من ناراحت چی بشم میبینی تو رو خدا چیزی هم بدهکاری ببین شما انگار خیلی از مال دنیا ها خیلی درویشی خب باقیل یه پولی بده این موشمه ها رو عوض کنم باس. چیه این کسافت گرفته همه جا رو یکیسه سیمان بگی؟ بده این چوبا رو بذار اینجوری بکنن تو خاک اینجوری بده نه یه باد بیاد میخوره تو ملاجت که می لگد می‌زنیم به چوب کپر به هم میریزه خانم چرا اینجوری کردی شو من انداختنمش والله باد همچین میزد سر قشاق بپره چرا جوری بکن حاجی که چیزی نگفت چی بگه دیگه میگه نمیخوام دیگه زور که نیست نمیخوام خیلی خوبه آره. بابا این از لای افتاده بیرون مثلاً پول مفت کسره جنشه چه کاریه خب میبرمیدم به مستحق بیچاره یه ای چیزی اینجا دشت برهوت مستحق همینه که میبینی این مستحقه اصا پول نمیگیره از آدم چرا پول نمیگیری حاجی من واقعا معذرت تو خری خود معذرت میخوای دارم خیرات میکنم به مستحق معذرتش کجاست فیلم برداری رو قطع میکنی لیلا به طرف مرد میره بفرما لیلا مستحق رو پرت میکنی طرفین تو من ماشین تکون میخویش مرد به پایه های چوبی کپر نگاه میکنه <تصفح> من با واقع دستم نمیتونم کمکت کنم اینجا پی بشینی میخواد رو روشن کنه آتیش داری؟ پیر مرد تبریزی بهش میده باشه ها اگه حیزت ناراحت شدی نه نا من ناراحت نشدم عصبانی ام نمیدونم چرا دیوونه من با چیکار کنم دیوونم کرده درست میشه بین زن و شوهر از این چیزا زیاده خواهرم خب خواهر خوه هر آدم که از زن آدم با آدم نزدیکتره دنبالشه جرم سنگین کرده مادهی ببینشون بره مرز گرفته بچهاشو خفه کرده تو استخر خونه ما زهر از بیمارستان مرخصش کردن با بچه یه روزه شب کشتش برای ما میلزه دست من خورد کرد هم شورش ورش رو بر نکوشنش آخرش آسوشگاه دیگه که بدتره هرچی داشتمو جمع کردم پیرامش اینجوری پس پش بریک از این قاچاق شیا ورسشون بر آب ولی به اینجا که رسیدم دیدم اینجا راه پولونو بگیرن ولم کنم به امان خود تو این بیابون دیدم با این همه پولای گرفتار بشیم کلکمون کنده است ولی همینجوری گیر بیافت میگم یادم بدبخت دیگه خودمون دیگه گفتم تو این کوهامی چرخیم می داش به اینا اون. الان ساعته دارم تو این کولکمر میچرخم. یه نفر ندیدم جس شما. شما که ماشاله یه دنده. خب حاج پودر رو میگیری راحت اومیکردی بابا. نمیشه که. من مسئولیت داره. باشه چیزی من این پودر میذارم میشه شما امانه. نه ببین ام. گوش کن. خواهش میکنم گوش کن. تا غروب میرم اون ور خاارم رو تحویل عاشقم میدم برمیگردم. شب میام اینجا همش از پس میگر. نه نگوه جی گرفترم آخه من چجوری این همه پولو نگه دارم شما میگه من چی کار کنم پیرمرد عزیب بقل کتی که پوشیده قرآن کچیکی بهش میده این قرآن همراد باشه زود برگرد مرد قرآن میزره تو جیبه پالتش منتظر تمام زن توی ماشین رو به آینه مشغول آرایشه هلو. آقا کی امرش مشتری داری؟ بیا سنتی منتره لیلا و برادرش توی یک قرده بین را بهش پشتی میز نیست از پنجره دو که بچه رو که وسط برخ رو استدار چه چی میزاد اینو؟ لم داره لمش چیه؟ لمش این دیگران نباشی من هست درمشم دیگه دیگه کاری میکرد چی کاری میکرد نه خواهد خواهد نه خواهد یاد بگیرم نمیتونی میگم پسر جوانی با کمی فاصله از اونا پشتی نیز دیگه نشسته کنه هم میشی میره طرف دوشیه قهره خونه لیلا دستش رو به طرف مرد دراز میکنه پندک میفته تو زمین پشت باید نه نزنیم خودت به زمین اصلا حاصله اونو ندارم خودتاش ندارم که الان خودایی زنی میزنه بعد هم باید باید باید حرف کسان یه همه حالتو میگیره چی داری؟ بقی جگر داریم اما درد یه چیزی بده ماشی، اینجا هشت باشم گیر میاد چرد نبتون هشت باشم باشم ها؟ نه آقا اینجا از این چیزو خبری نیست پس اینجا به چی میگردونی؟ چای غیلیون؟ دلی جگر هم داریم والمسلان یعنی خیلی مردی جلا همه میگیره. در وقت تشخیص بده مشکلیه. میگه مراد چی گفت که اون چیزی نگفت. مرد از قهوه خونه میده بیرون. قهوه‌ت اومد کنار میز. خاصم بذارم؟ غذا. نگاه کلاش خیلی باد داره. نصیحتش کن. اینجا تیرو نیست. شوخه میکر. شوخی میکرد. شوخی یا جدی فرقی نمیکنه. تو پنجونه تو چایام که بریم این قرمخونی پیدا نمیکنیم که باز باشه. یه صاحباش در طرف جونیشون گذشن رفتن هم صحبت این کسابت کردن درش تخته کردن اشتباه کرد نه بعد این حرفا میزد مرد همراه بچه ها و یه دستی هیزا مینا تو قهره خونه بچه بشینی بشینی اینجا لیلین چوبارو ببین این همه دومرشون با سر خودمون بود میرسی رو پیداشون کردم درم دکیه پیره مردم دنیا رو میبینیم خب گفتیم رو میره مثل عمود عمود ماشین شما در حالا میره حسول پردارون بالاست این چی میگه عمود ماشینش خراب شده راه نمیره کپسولمون رو باز پاره بعد شما این چوبارو برای چند میگیریم؟ نه فول نمیگیری شما این چوبارو میسوزونیم؟ بای دیگه میری این چوباری که مزونیم چند دارم مزونیم نجات بده داروه دارو داره میبینی میگیره می طرف بچه ها نیلا ساک به دست میره حیات پشتی قهوه خونه سر بریده یک گسام یه تشت فلزیه زن اومالی جایی میگرده به قهوه چی که کمی دورتر ایستاده و پشتش بزنه نگاه میکنه کسی پول از توی ساک بیرون میاره میزره یک گوشه میخوای خانوم؟ زیر سیگاری. حسکتو. نبود مرد یه زیر سیگاری به طرفش میگیره. زن سکو برمی داره و میره. وقتی چی کارش مشغول میشه. میبری براش من برم دستوری رو هست از اینور؟ فقط یه کمی گله. گل که همه جا هست. زن از پشت نایلون پنجره موبایلش رو میگیره طرف مرد. قهوه چی میاد تو سالن مردونه میبینه مرد با یکیسه اسکناس میاد اونو میذاره روی میز جلو بچه ها اونو بچه ها دستی یه بزرگ خواستی اصافتونی پای من نزنی یا پایشون دیگه پول دارن حساب میکنم پسری که قبلن توی قهوه نشسته بود، با دیدن پولا بلند میشه میاد دیرون میره طرف دستشویی زن توی آینه دستشویی داره میکنه. لیلا از سوالت مید پسر جوان از دور کیسه پول به دست استاده خانم کیسه تو جا گذاشتی. مال من نیست بره هزاریه توش این خیلیه بعدم اون کیس شوهرته اون یارو اون پایین داره پول پخش میکنه نظری پذری چیزی دارین؟ آره قبول بشه خواهش میکنم یعنی اینا همهش مال منه؟ شوهرم لابد به بقیه میده دیگه چه؟ شوهرم لابد به بقیه میده آه پس شوهرته شوهرته یا شوهرته <تصفح> شرده همین بوله که زنش نیستی پسر میه طرفی لیلا پرس کن نباشم نه آخه نمیاد به بلده نه میگم این همین یه ماهی پیش آمده بود اینجا خواستی که رد کنه از مرز اره خودش ببین اگه میخوای از مرزت چی من خودم هستم گفتم بهت نظر داریم دستته. نمیدونم ولی اگه با منم نخواستی بیای به هر کسی اعتماد نکن از شهر اومدی پول و پده میگیرن تیغت میزنم ولت میکنن تو کو این گشت لبه مرزم راوچای خودشو داره آشنا میخواد این که باشی تای خالی بند الحمدلله پول فلای نداریم دیگه همه دادیم رفت ا ببین نگاه نکن اینجوری تیپ زده با ستا سه سوت ماشین تو میزنه رو هوا اون وقت شب بعد مهمونی بیاید خونه ما یهو نیدا با عصبانیت به اون نگاه میکنه <تصح> <تصح> نمیای که به میره ساکش رو میاره یه روسری صورتی رنگ با گلوی سفید به طرف زن میگیره. ببین خانم اینا همهشون تازه رسیده آخرین موت تازه نیست نز بود خوبه ببین شما این موقع بیری تهران مهمونی چیزی به ما میگی فلانی فلانجا اب داره کردی. به کله بافتنی زن آه. اشاره میکنه. این خیلی من ماشین تمرسک که خوب قریدار داریم برا مرد داری صندوق عقب رو باز کرده و نشسته همونجا وسط پولا تو هر کیسه پنی میلیون تومن پوله رو هم چقدر چه میشه چهار پنی آفرین شما چنده کیسه یک رو هم, چند هم میشه ما بگیم چهار برای میشه گفتی؟ کیسه ای پرمیده به یکی از چه؟ چه؟ نه میشه نگیدی تا شد؟ تو نه میشه شیشتا نه این درست میگه هفتا طرف نگوش نیست یه جایزی گفت بدم ایکی سی دیگم نه ما تا میشه دیالا الان هفته حرف زیری بزنی همه شداتو پس میگیرم پولاتو جمع کن بزن بشه با ببینم با رو بر میدارم مرد از اونا فیلم برداری میکنه دوبینا میگیری طرف قهوشی که داره کسی پولو بزن پس میده زن کیسه به دست میمونه جابتی کوهستانی رو مهر گرکته یه بسته هیزون بالای باربند ماشینه مریض دیگه دست انداز داره خب میبینی که چه کم نمیشن اینا از یه روز تا حالا فرق ما کرده لیخته این پشت داشت دو روز یه روز نیم حالا سیده تقسیم برده هم میشه روزی 16. خب بگه بگیریم بیستا هشت روز بعد بچرخ 8 روز و نیم بالم هم که من رو دست داشت با اون پسر میاد به کارش دیگه مگه قرار نذاشتیم نفر یکی سه حالا با ستا کیسه یه جاب تا ایمت ستا هشتا یکی اون پسر جبانه هفتا بند شن. نگه نگ پفت تا کیسه داری به بچه چرا؟ این یعنی چی؟ خان کنم خیر باشم قرارمون نفری یکیسه هست مسالمه؟ تشکیزم این بود علاکه 100 کیلو چوب ماشین کنیم من تشکیز شما بودم آقا من دم قربه کنم منتظم تو بودم الاف بودم یعنی با کمی باربند عشينه كه چوبه دیگه ول هوا ميخوره. خب منم آدم ميريختيش پاين اگه اینجا که از علاچ مرضيه خوب. بچه‌ها كه ديگه از میگی سلام سلام خوبی خوبم. آفرین كي سهر به ننه چيليك عكسش ميگيري. آقا تو جنسو بخری. توش رو بيرو بعد جلو چش هيرو جنسو درست کنی چرا؟ چرا؟ مثل پمپ بنزین، بعد سوخت رو دستگاه. آقا بلن که اون بچه ها اگه یادت باشه یک داشتن به توضیح میدادن که اون بالا سرده این چوبارو میسوزونن که نمیرن از سرما که چی؟ یعنی تو الان نگران بودی که اینا خاطرهی بدی نداشته باشن از این حرکت تو چون که بهشون پول داری بابت باد هوا چیه هم صحبت میکنم میخواستی آزورد خاطر نشن؟ چمیش میای آها ببین من گشتمه تو منو تفهیم کن چرا تفهیم کن تا به چیه من گیر دادی الان من میخوام بدونم چرا 100 کیلو چوب الان رو سخته این ماشین آها ببین من الان پیاده میشم این چوبا رو میذنم زمین زیاد راحت من راحتم. من راحتم ام اینا 100 سال دیگه هم اینجا بمونن مشکلی نیست میخوام بدونم که تو چرا اینار رو بار زدی اون موقع من نگران ماشینم نه چوبا میخوام بدونم تو مغزت او چقدر تو مغز من هیچ خبری نیست تو باز زن هیچ خبری چو مغزم الان گشته نشه این دروجیگرم ماس. نه. به نظرم یه فرقی هست تو مغزت بین مثلا اون پیرمردی که برای علی چری اشبام کشید بارش کردام با این بچه‌ای که خیلی نقشه قرب مسابقه شون بله فرقی هست. آها. و و و اینکه یکی یه شخصیتی داشته باشه خودش خب بعدی یه بم میونه تو زاره زندگیش خود یه بدبختی نه سرش داغون شده. یکی دیگه هست که لومپر چاخانه چه میدونم گداست. شما سموار جاج میکنی که کی لياقت داره کی نداره؟ آه. خب آره دیگه یعنی اینجوری نیست که ما که چقدر دیدیم بیچاره بود کی سه پول بدیم دست چون قبلا قرارمون این بود ولی الان تو داری میگی ما اینجا اولمپیاد لیاقت مستظفین رو بندازیم umat کوخنشین بیان تست بشن تافل لیاقت پاس کنن با اینکه تو فکر کردی به هر دل نالایقان گلان جرشون می‌جره اینه الان دوستان دور بزن من میرم بچه رو پیدا میکنم خب اول پولم ازشون پس می‌گیرم من شوبشون برمیدم وزنه ماما بذار بذار بذار آنتن ندار مرد قیاده میشه بیرون باد و پولاکه بابا بذار بشت سب کن الو الو ماما چون من اینجا آنتن ندارم هیچی از حرفاتو نمیفهمم بذار جای خوب پیدا کنم بذار آنتن مجرد روی بلندی با خب خب بر... آره آره اینجا همه چی که. این همون کالیفرنیا فقط به میاد من امضا امزا قرنه شد فقط گفتین فیلم یا عکس من چی بفرزم واسه تو الان هم کجا تو این کوکه الانترنتم میدونی من کجا رای سادم کسی نیست اینجا شما تو تلویزیون همه دارید وقتی تو تو شهر بینون بودن همه الان رفتن توی سراخی من رویس کنیم دوری هستن یه دقیق گوشی مامان جون یه دقیق گوشی مامان من به ماما ب... ماما زنگ میزن گوشی گوشی گوشی مرد موسین کنار جاده نشسته با موبایل شماره میگیره مرد میرسه به اونا بابه این آقا چیزی که میخواییم دارم مران چی بخواییم لینک دیگه چی؟ بار کس دیگه هست امادیم تحویلش بدیم مرانیم چی میخوریم؟ خوب خریداریم ما؟ بارو فروختیم خاطر اون زبان بسته همون بالان لینزفورد افتاد پایین کجایی پاس. همین پایین پیچ نرسته به قبر سون یه بوگو بزن ببینم نزدیکی زدی پس خیلی دوری که گازشو گیر بیا قاتلشی پس اونه که خلاصش میکنم دیگه واسه چی؟ پای از که میشکنه منو بهش تیر میزنم که بمیره مثل که من دام ها؟ اصمم نیست گفتش کار این دیگه تمومه رو باز کن با کارمون این نیست خانم زمینمون موچک خورد دیگه محصول نداد آقا میگم بیا پالون اینو باز کن پالونش چرا باز کنم موردنیه دیگه تو دکتری یا چی قلاف کن اونو بیا اینجا چی کار به شکمش داری دستش شکسته این حامله است چم کو بسات تو ازا به کارمون برسیم بهت میگم حامله است این قاتر خانم قاتر باشه یازده هفته شه <تصفيق> جشن <سارو دور> دیده <تصفيق> آخه داره تکون بخوره کابه بیا دست بزنه داره میزنه قاتر حامله نمیشه پس این چی داره لگت میزنه تو شیگمه چه میدونم نفخ کرده نفت کرده یعنی چی خورم دام پزش کرده. دست دست کنه یه فرق می کنه این آنه دسته شکسته چه ربطی به مردن داره این آقا هم دسته شکسته برام خلاصش کنم دسته شکسته رو آدم می بنده این آها بور کنا سکه یه گوشت یه هفتی رو چک می کنه زن نشستی کنار اصل لیلا کوششو گذاشته رو شکن است کافه میده طرف لیلا لیلا رو سریع صورتی رو از جیبش بیرون میاره میپیچه دور مچه است مشکل نیست با دست اگه خوب میشد که خوب بود شکسته مثل که کارامه ها وقتی خوام دکتر میگه میشه یعنی میشه دیگه از سوال هم اگه روانی الان که نمیتونه را بره میمونه یه شب هم که بمونه چون هوا تلف میشه شما فقط میخوای بکوشیش بری پی کارت دیگه میدونی چند سال تو کوه ها دارم مایزمون میچرخم مونس سامه داره زرچی میکشه خب منم میگم اگه میقایی بو کشیش بفروشش به من ای بابا من هر چی میگم یه حرف خودشه میزنه پول کرره تو که میشم حساب کن که باورت بشه میگم حامل است شما فقط بگو چند قیمت هستگی داره نمیدونم نمیدونم یعنی چی الان یک کرره قاطر بخوایی بفروششم میفروشی کرره که نمیفروشم سود مین که نگهتاریش کنی از آب و گل که در اومد بفروشیش. ببین چه سوسع میاد اینجوری میا. هم که شما رو دی آره همیشه همونطور که شما هم میگی ببریم بابا اینو ولش رو من کورش رو به قیمت قاچر میخوررم. بدونم می آاخه کمی دورره درست دیگه چی میشه؟ اومده به کورره چلاق بود کور بود دوقله شد هنله سربست اومد اینو خدا نخواست تا لبشه با مگه به حرف منطوری؟ تا از بلندی اون پیسی اسکلوز میندزه پای. یا تا پول نبرن نه هم پاس نمیدن. بردار. اینا که خیلیه. نظرس. تمشو یه جا میبرم. قاطر و کره و و حفتیر. حفتیر دیگه چرا؟ میخوای پولونو بگیری اگری خلاصش کنی؟ حفتیر ماشین توی جدیه گل گرفته به کندی حرکت میکنه میسته کاوه هفتی به دست طرف ماشین. آروم هفتی رو میزنه به شیشه یه باشی هم زیر بغلشه هفتی رو میزنه تو داشبورد. این چیه شب ساعت میشه همه شو میره باری خوب با اونه بگیرنم میشه خواهی چاخ نامت میخواست باید قاطعه رو بزنم چه قایستدی؟ صدی صد کن بزن خوب دیگه رفتیه هم گرفتی چیکارش داری صدای تیره این خیلی بلنده اون از اونجا میشنوه بباید برگردی بزنی قاطره رو راست میگم نمیمونه تو گفتی حامله کسی خوب میشه اون که خودش داشت خلاصش میکنه میذاره کارشو بکنه دیگه پولو چجوری جوری بهش میدادیم میشه بگی داستان این بود که ما پولو بهش بدیم قاطره رو بخریم ازش مثلا بعد فروش کنیم بیایم پایین خودش برگرده خلاصش کنی که تو اون وسط یا گیر دادی هفته رو هم بگیری ازش نمیدونم چرا حالا چی؟ میخوای با این دستم برم تیر بزنم برایت؟ با اون دستت بزن کاری نداره کافه؟ من برم قاطره رو بکشم؟ داره میمیره دیگه چه فرقی میکنه؟ شاید خوب شد نیلا هفتید به دست آرام به طرف اسب میده از سر شیبی میده پایین از عصد خبری نیست متحجب میشه نیلا با کلن کنار یه ساختمانی در حال ساخت مشغول کندن زمینه کسایی پولو میذاره توی چاله کافه پشت لاشه یه ماشین که همون بقن خودش رو کرده ایلا رو چار میکنه بابیل میکوبه روی خواب بیا طرف کافه و میره پشت ماشین اون بحال اینجور پیداش کنه و یه دوره قب من بس بس بس بس بس بس بس. مردی من چاله یه دست با فرقون یه طرفی چاله بیلو بر می‌داری. خوف میزدی توی فرقون. مرد متوجه کیسای پول نمیشه. تو فایده نداره. برات راحت بیم واقعی کیسای راحت ماش بگیم. دیروز. یا رو بای میسه حاج آواش رو نرد میکنه راش میکشه میره اصلا برم در خونه های که انوس آدم توش هست خونه میذاریم دمه در زنگ بزنیم قایم میشیم بعد چا رو اوناد زوق منظور عکسمون میگیریم تموش میره دیگه تو دیگه زنگ بزنیم خرکی نیست میفهمو تو رو دیگه سلطان یادمه در الافت نمیشیم بعدش زنگ زده فیلم میگیرم علی کیسیه میموس نواساز تو چرس میگی لالا یک در میلیون فرض کن یک دفعه اشو میکنه همین من زنگ نزنید بذارید بری یارو فکر کنم علی آدم یه بدبخته الان رو میافت دود خیارون با نوازش اتزاقه بزن در و دگار مقدار پول پرتاشا نه میزنم. تو تو ترا میذنه چطور فکر می‌کنی همه مثل خودت خندان الهی می‌دونم که تو میدون ورنگ داری راه میری شاد وسط مشنگ باید کیس میان میان رو با کیسه چک بساز تا میام بعد بیان بگیره اوه نمیگیری دیگه نمیگیری فیلم دوستا چی تو حالت باز بگو زنگ این شبتی نذره زنگ وقتی فرنگ وقتی زنگ یارو تو می‌زنی مرد دوباره میهد طرف چاله کاوی موبایلشو میگیره طرفی من مرد متفجه کیسه ها میشه بیشینه کنار چاله کیسه رو بیرون میاره دروبر خودشو میپنه کیسه رو زیر کاپشنش آیه میکنه میره طرف ساخته من پشت بریم پشت بریم پشت بریم من افتاد تو ماشه به خواب نیستم آقا آقا نیلا میری طرف ساختمان آقا نیلا به طرف داخل میری کیسه اینجا ندیدین سلام علیکم سلام میگم یکیسه اینجا ندیدین پلاستیکی انقدر نه خانم من جا گذاشته بودم. این چه تخت سنگی چیزی اینجا بود؟ اینجا اصلا تخت سنگ نیست. اینجا خیلی وقت مواصریختم. منم الان امروز صبح اینجا بودم. مواصه نبود اینجا. نه خیلی وقت اینجا مواصریختم. الان چند روزه. کاوام یه طرف لیلا. چی میگه؟ میگه خیلی وقت اینجا مواصریختم. چند روزه. خیلی وقت بود که دینم بیل بزنه. ماشخص شده. نه این صبح خواب صبح میزنه یواش یواش آخر روش وا میشه. بیا ببین بیل بزنی. یه ببین، ایک مزونی انوس. ببین مانی میگی شما برداشتی دارم میگم. اصلا اینجا سنگ نیست. اینجا خیلی وقت یخ زده. همه جا یخ زده اینجا. تعویل بگیر. ما اینجا نگهبانیم آقا. خون زندگی مردم دستمونه. اگه دیده بودم میگفتم دیدم دیدم. ببین آقا، ما هرچی داشتیم فروختیم. داریم بچه‌مون می‌بریم اون ور مز عمل کنن. الان همینجا تو ماشین افتاده ناخوشه. این پول بیمارستانش بود. سال بعد اینجا راحت می شدیم. وایسریم دستمون رو من رام چی شد بوم زده من خورش در رفتیم جا بازشدم کیسر رو. پیداش داشت نکنن بچه نمی جا تو ماشین تلف میشه. خانم بچه توی شال خدا شفا بده. من اگه داشتم به جان بچهام خودم خرجشو میدادم ولی ندارم خب اگر من چیزی دیده بودم می گفتم دیدم, دیدم دروخ بشم می شما؟ شادور بله. به شما نیمه خبیجما. یه شادوره پلاستیکی با قراره. بعد. اشکالی در این نگاهی دفتر بندزم. داخلش چی؟ می چه؟ نگاهی بندم. نه داخل کسی هست چی؟ میگم داخل خانواده است زن و بچه دارین تو چه ارتونه ما زن و بچهش بوده مایسا اگه با تو نیستم میگم زن و بچه داخله نرو تو دیگه زن و بچهات داخله ببینم آقا زن و بچه داخله من که میتونم برم تو زهر میزنم و زن و بچه کشه بود خانم <تصفيق> خانم یالله زنی کنرلاله خب دوات زد این ترسیده کی رو داری رنگ میکنین تو نه دروغ نمیگه حریش نداریم من ببینم زنتون یالا ما کافه به زمین میفته باشه مگه میری اون تو میشه برو دیگه توی چادر کافه طرف مرد این را از چادر میاد بیرون حیفه دختر به این خوشگه نیست اونجا قایمش کردی لاغت ببشتی جایی درستی پولم که داری کاوه با تعجب به مرد خیره شده توی جاده در حال حرکتم درد میکنه چیزی نیست مسکن هسته یا عدویر بدم فایده نداره دو تا کار برو، اون کامیه نه. کمپرسی از رو دور بذار. دور بزن دیگه. دور زود باش. چراخ بزن مثلا شنور گالا آقا بلد. بزن کنار بله بزن کنار بهت میگم بزن, بزن میگم دیگه اه ولی واسه جان میری واسه بشه تو ماشین لو پایینم. پایین. کارتی چی؟ کارت شناسایی، چی؟ من باید این بارو برسونم دیرمه. قایی ندارم، دارم میگم کارت چی داری؟ افغانی نیستیم شما آقا. اهل هم اینجاییم. من کو و یک یک دارم آقا خلاف نکردم. آقا به خاک مادر شاب یه پایین رقه بله؟ یه پایین رقه رننده و بغل بسیش میان پایین آقا من الان چیزی همراه هم نیست یعنی چی؟ گوباینامم تو کمپه من الان باید این بار آقا برسونم کارتم تو چادرمه تو کمپ نه تو رنده کامیونی گوباینامه همراه همراه نیست تو نوازه بگیرنه چطوری ثابت میکنی شی رو ثابت کنه آقا این برادرمه این مسیرم هم همه ما رو می‌شناسن. سه سال داریم اینجا کار می‌کنیم. یه کار میکنیم کار. من میدونم شما اینجا کار میکنین من میخوام بفهمم شما کی هستین. من مرتضی کرندی‌ام. 3 سالو دارم اینجا کار می‌کنم. من می‌دونم شما تو کرندی هست. شما دالاش دراست. بله. بله آقا. آره مرتضی کرندی. من یه حفه سن دوبرت می‌گردم. واسه چی آخه؟ به خدا من صبح میرم سر کار، غروب میام خونه لونو پنیرمو می‌خورم. و حضرت عباس اگا اذرام به یه مورچه برسه مورچه چیه دارم میگم دنبالت میگردم همه جا این مرتزه گرندی کجاست به نیروی انتظامی سپردم به راه ترابری سپردم هیچکی نمیتونه کجایی بابا یه شماره تلفنی آدرسی چیزی حالا رادمنش بیا پیدا شد به طرف ماشین و لیلا میره اون فرمای رسیدم بیاری. رسید چی برنده شدین مرد حسابداری تو خال برنده چی پولام بیا آقا میگم برنده, برنده چی؟ خوب و سبک میگم نیوه از ماشین پیاده میشه دو کیسه پول میاره یه برگم دستشه میخوام رادمرش <باردمرش> همکارمه سلام خواهرم این ده مینوتان پول نقده قشم بگیر و بشمارش مرتزا کرندی کیسا رو میگیره با تعجب این پولا مال منه. این رسیدم لطفا امضا کنین. برگر رو میگیری طرفش. لیلا فیلم برداری میکنه. چرا ماتت برده بگی امضا کن دیگه. کار زندگی اینا واسه چی اخر؟ سرون قوراکش کن اسم شما در اومده. دوستانه برم پسش بدم. تو چیزی نداری. این کیسه ازو پاره میشه. بله، یه کیسه تو ماشین داری. قره قوراکشیت چی اخر؟ ببین. خواهی پول که میاد وسط برادر رو برادر رحم خوب حواست جمع کنیم اصلا میرون یعنی کیسه دکتر وسط از شما دارد نکنه از ما گفتم الان دیگه زنم میتونه بگیره بگی دیوونه هست چهار ماهی نامزد کرده لنگ پوله نامزد کردی؟ هل. اسمش چی هست؟ اسمش سپیده هست سپیده خانم خوشگله ای بابا دارم سوال میکنم بگیر میگم اگه خوش پولو حرامش ای خوشگلی این پول بی به خودی نکنی. صبر کن. یه بهتری برات میاد. مرتضی کرندی لبخند میزنه. چطوره؟ خوبه؟ خوبه. یک سال دییت تا تونست باباشو راضی کنه. خب به سلامتی. انشالله خوشبخت بشی. خوشبخت بشی. از بعد بدبختی شد میگم بفرمایید بریم سر ساختمون یه چایی در خدمتتون باشیم بله بله همین پایینه پنج دقیقه بیشتر را نیست این جادیه یکم گلی هست هم و نزدیکه شما میخواییم این سر کار ها بخاطر پولا میگین حواس هم هست میذارم تو کیسه زیر صندلی جاش امنه خیلی کجا میخوای بذاریش دارم میپرسم شما الان داریم این سر کار خب کارگریم منتظرن؟ حالان 10 میلیون تو هم پول نقد به شما دادم یه هفته از تو راختم با این جاده دارم دنبال رو میگن کامیون کمه این ساختمون هم باید تا سر برشت تحویق ش پول ها رو میخواین؟ با زمان رو خوش میری یا پلیس بیارم کا مگه من چی گفتم آقا؟ کار میکننی حقوق میگیری دیگه پول اززم نداری چرا آقا؟ اینکه چیزی نگفت دهخار نکن برگ سر کار آقا ما آ ماندس نداره سر کار که میخوای بری کارشنناایی هم که نداری اصلا چیشم این کار آقای مهندس دارم به خدا شناسنامه دارم مصطفی تو بهش بگو تو کمپ کمپ چه دردم من میخوره من میخوام بفرم شما کی هستی الان یه هفته تو این دهگوره دارم شما میگرم هر جا میرم میگرم این آقای مرتفا کرندی کجاست جاست مرتزا بودی یا مصطفی؟ مرتزا چی؟ خاوی رو به درقی مرتزا دراز میکنه از لیلو می مصطفی. کجا می مصطفی کرندی کجاست؟ هر کی یه چیزی میگه. یکی میگه توت ساریه، یکی میگه قادرباد، یکی میگه رفته از زن. آقا مصطفی منم. بله. مصطفی منم. شما گفتین مصطفی یا مرتضی؟ مصطفی. آقای مصطفی کرندی. شما گفتی مرتضی که؟ گفتم مصطفی، شما مصطفی یا مرتضی؟ من مرتضام. شما بخوای سر کار. نه به خودت. تموش. پوله بهش. به مصطفی میگه؟ يلا ببینم. ولی شما گفتی مرتزا منو شما نداره که آقا مرتزا پول من پول شماست اصلا هم چیزی نیست شما بی اینجا مصطفا رو دور میکنه قیلا از اونا رو نگاه میکنه این قرآن روست بره تا قرآن هست کارتشان سنین دو دوزن بریست بزنین رو قسم بخور یک قرار از این پول رو بردارد نبیده نمیشه که نمیشه. قسم بخور مصطفى قسم بخور بیا ندار این رو. دستشو میزه رو قرآن آمید. چی بگم به مرتزا نگاه میکنه او به این قرآن قسم بگو به این قرآن قسم من یک قرون از این پولو من یک قرون از این پولو تحت هیچ شرایطی بله تحت هیچ شرایطی تحت هیچ شرایطی به برادرم مرتزا کرندی به برادرم مرتزا, برادرم مرتزا کرندی به برادرم مرتزا کرندی نمیدم نمیدم نمون شده کاوی کیسا رو از مرتزا میگیره میده به مصطفی سر کار که نمیخوای بری نه نه به خدا. برو بهمارم خودم حالا میری طرف ماشین لیلا با نراتی رو نگاه میکنه باره تو میخوای چودار بری ها میخوای تحویلش بدی؟ نه نه خالیش کن. چی؟ یا خالیش کن. کجا؟ دوستتر من چه میدونم؟ بشونون دیگه دیرمه؟ در حال خالی کردن باران کچ رو میریزم روی زمین پر از برف در حال حرکتن داریش تو میبینی تلفون قهو خونه با تو هم میدارم میره تهرون درست دارم میرم درست داری میره تهرون؟ بخوا بری تهرون؟ آره همه جم بنزین نداره الگی داری کجا میری؟ تهرون یارم بخواید چیکار کنی کنیم یعنی چی؟ دیگه بسته برمیگریم میگیم نشد نشد دیگه نگرم چیکار کنیم؟ یه یار از اومدیم اینجا؟ باگرم شدی زندگی کن. هم زندگی نکنیم. لیلا لیلا نداره. چطور تو بسادت ادعا میتونی بگی پولو میگیرم میدم به اون فلان. منم میگم خسته شدم میخوام باگره. چه ربطی داره؟ اونا دو نفر بودن من دوز کیسه انداختم. چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ خوب. تو همین الان از یالانه 10 میلیون تومان پول نقد گرفتی. گرفتی. گرفتم. کاظم اونجا چی گفت؟ چی گفت؟ گفت سر کار. هم سر کار. بزن کنام باستان هم بزن جواب من رو بده بزن کنار نمیذارم کنار کنام بزن میذارم میزن دهنه, دهنه. خیلی معمول ما همینجور پیاده بشم خاوه در موشونو باز میکنه پرد میشه کف جده بیاره شما میرونه بیاره شما نیلا رو میشینه پشت فرمه چرا اینجوری میکنی؟ نیفایین نمیتونی در اونی بیانده است نیلا میشینه کنارش حرکت می‌کنه. دون می‌زنه. یه هنوز روی باربند ماشین کاوی دستی مشغول رانندگی، بلا صندلی رو خوابوند و خوابیده. کاوه پیاده میشه هیزوما رو از باربند میاره پایین میرزی کنار ماشین شیشه الکلو با هفتیر از توی ماشین برمیداره میره طرف صندوق عقب دو کیسه پول بیرون میاره اینجا قفرستانه دو طرف اینو برف سفید گرفتیم. میره طرف مردی که در حال کلان زدنه بچته؟ بخترمه یه سال زمین نه؟ بله همین یکی بود؟ چی؟ میگم همین یکی بود؟ همین یه بچه رو داشتی؟ نه هسته پسر دیگه دارم یه دختر از خدا خواستم به هم داد فردشم گرفت خیلی این تفلک یه روزش بود؟ خوابه الکولو می پاشه روی بوتهای خشک شده کبریت می آتش آتیش می گیری دیزمارم می ریزه روی بوتی می کنار آتیش مرد با اصغانیه کلر نزنه ای زود برن باز بهتره نه بزرگ میشنم بهشون عادت میکنی سختاره دیگه اینجور میگی رفت خدا رو کنه. کن زود میری یکی دیگه درست میکنی خادری چی کار میکنی این زمین که نمیشه کند الان یخ زده من بله خرکی باید خاکش کنم بله شرایطش باشه آدم خاک میکنه ولی الان مخواهی چیکار کنی این سنگه الان ماها تو قیل این چیزایی ولی آدم مرده که براش فرقی نمیکنه، خاک بکنی نکنی چیه؟ میفهمم دخترت ولی نیست دیگه رفت مرد اصلا من کجا هست الان چون این که دخترت که نیست دو کیلو گوشته حالا فوق شما یه قبری هم کندی یه گوشت هم چال کردی جلو چشت نیست خاکش کردی که نبیشه برای سرش میا برای که به قیافه باشه قیافه کسی کرم خورده صد مرحله بدتر از قیافه کسی که چ میدونم گرگ خورده هالا میخای جلو چشت نباشه فلشکنم ینجا برو نیم ساعت دیگه برگرمی این سگا استخنشم نزاشتم واسه بس این هم که فرقی نمیکنه کرم بخوردش یا گرگ یا هرچی بعد گنا نکردن شدن که برشون بچه تو بوده اینا تو سرو میرن از گشنگی بهزا یه لقمه سازشون تصف مسوالگو عصبیت کردم کی بشرا طرفی کاوی معلومه چی دارین دا دا زمین خلاص میشه روش کاوی هفتی رو میگیره رو به اون نمیگه هفته بزنی هفته زن شو میکشی. کلنگ تو بزن, تا صبح بزن در بیاد فهمان چه من دارم دخترم رو خاک میکردم برو خاککشو میتونی یار ها برو دست سوپ کلنگ بزن اگه میتونی سفت کلنگ تا رسیدی به نفت خب بیچاره نکندی بابا مرد میمیره کاوه هفتی رو میذاری تو جیبش گفته چند تا بچه داری سه تا وزنه میشین 5 نفر دستا به دهنت میرسه میگم دستت هم به دهنت میرسه داری بخوری اه. ای یعنی چی؟ یا داری بخوری یا نداری بخوری من پولونو بهت میدم پولی چیه اونجا اون جنازه رو میخرمش نیتم خیره قیمتشو بگم متعجب به کابی نگاه میکنی یه میلونت من اسکناس رایجان املکته چه کلوی... سی سد و سی و, سه و سی چه, چه که ندارم الان گوش کیلو چنده چه؟ خب بشمارش دارم یه میرون تو پول بد میدم دیگه کلنگ نزنی نه چیز بدیه نه چیزی پول مفت الان کمه؟ بگو کمه از تو کسه چند بست اسپلس پرد میکنه طرف مرد لیلا از زور داره به طرف اونا مینه چند بستهٔ دیگه پرد میکنه سه میلیون تمن کیلو یه میلیون تمن برای چی لیلا با فاصله از اونا میایسته من اینو خاک کنم یا نکنم چه فرقی به حال تو داره فرقشو که بهت گفتم میخوام اون زبون بسها میچیز داشته باشم بخورن این تفلک مرد اونا که هنوز زندن اصلا تو پول برای چی چیکار بس چی میخوام داری چونه میزنی بسیه پلاسیفیدو پاک میبونه بیا چهار میلیون تا خوبه؟ بردارم کابه میرم و. به حضرت عباس همه این پولا بر میدارم میرم ها معلم به کابه پشت میکنه و میره طرف ببریک نوزاد کفم پیچ کنارشه بابا اینجا هیچی نمونده قحتی همه رفتن چیکار داری میکنی؟ نیلا میاد کنار کابه بردارم بچه رو کابه با تو هم بردارم بچه رو چی کار داری میکنیم یا بریم این به اون صدا بچه بیچاره است هشت میلیون تومن میشه نفری دو میلیون و سه زن تو صدا بچه هست خورتو حساب نمیکنم. چون آدم نیستی اگه آدم بودی همه این رو برداشته بودی زره بودی به کوکر پشت سرت هم نگاه نمیکردی کردی نمی واسه مردار چال کن واسه رو کوه یخ کلنگ بزن فعال فکر نکن من نمیفهمشی میکشی من هم میدونم بچه آدم ببینو چه حالی میشه بچهت اسم داشت؟ بله بچه یه روزه اسم داشت؟ اسمش منفشه است ببین این ستا بچه اسم دارن ها زن اسم داره ها پس من از یه حلاک شدن پشیمون میشی یا باید من دیگه اینجا نیستم ها کسی چه میفهمم واسه چه این پود دارم بهت میدم این بچه که دیگه به زبون نمیاد فقط منم و تو یه رفتی که من دستانی نزدی یاد کاوی <تضحن> سیلی میزنه تو گوشه لیلا لیلا میره کاوی عصبی بر میگردی صرف معلم خیلی خوب میخوای آتیش بکشی بزندگید کانی نداره شما فیش ها حقوق میگیری ها؟ صد تو هم فاقش ها یه که اسکلاس میدازه تو عتیش بیگه شد تو دستموزی یه هفته کارت بعد حالا یکی دیگه دو هفته ما میشه شما بزن بزن یک کننگ دیگه بزن میشه سه هفته یکی دیگه یکی دیگه کننگی رو بزن شما مسئلهی ای نیست ایشانه تا بهار زمین نفسی میکرد یه جلو جلوت میشه چه دستیش لفته کننگ از طرف میف پنج هفته نیم میلیون پول رایج مندکه رفت تو خاک فنای با تو هم لیلا از دور اونا رو میبینه میره تو ماشین ماشین رو روشن میکنه و میره کابه با نارهتی بگه با کیسه پول داره میشه نگاه میکنه جنازه با نفش کوچولو کنار قبر مونده کاو میده طرفش کنار جنازه میمونه کفنو میزنه کنار روی صورت نوزادو باز میکنه حالا آرام کنار جنازه دراز میکشه. بیلا با قذب در حال رانندگیه استفراغ کرد نگه میدارهم میاد پایین میره روی تخت سنگ میایسته هوا تاریک شده لیلا توی جاده در حال حرکتی رسیده به کفر پیر مردی که نراجش نشسته ایلا میهه طرفش چی شد؟ نتونستین رد چی؟ از کجا؟ داداشت گفت میخواست ردت کنه برای اون طرف چی شد؟ داداشم کیه؟ داداشم همه همه بر بیا پاشو بیبریم برسونم افیه جایی پس اون آقایی که با شما بود کی بود؟ گفت برادرمه؟ آره درون گفته گفته که اون پولا رو ازش بگیری گفت قروب بیاد اینا رو تحدیر نمیادش آج آقا. پشت برو از اینجا کجاست داداشه میوفته داداشت کیه؟ داداشم نیست حالا هرکیت کجاست حاجی میگم اون نمیاد پشت از اینجا برو نمیشه من قردادم گفتن قروم بیاد چرا هرک پشت نمیدی نمیاد اون حاجی اون پولارو دادیمان خودته بر رو بر یا چه میدارم بلشم اینجا؟ من میشینم تا بیاد امانت این پولا امانت چیه؟ ما که داشتیم همهش رو میدنیم به خودت خودت نکرفتی اینجوری شد حاجی قربونه برام که که من نه یا یا خیلی خوب از همینجا میگم خوشو از اینجا برو مریض میشی نمیخواد دلت واسه نم بسوزه داداش تنه چی رو برام گفت تا اگه دلت میسوز، سر بچه تو بدا رو نمی چه بلایی من بچه ندارم حاجی چیو اون مرزی که شیل گفته مامون که این رو به شما بگیم بریم نکنه سری داداشتان زیار آب کرد چرا هسته میگه همیتا خدا ببخشتت خانم این ها کی هست یه تکنور کنار ماشین دیده میشه انگار موتوره حالا چند تکنور دیگه احلام یه طرف ماشین چند تا موتور سوار میره کنار ماشین به یکی از اونا میگه ببخش میشینه پشت فرما سوار دور ماشینو رو گرفتن نمید کنه حرکت کنه چقدر سوار؟ یکی یکی دارم میان. نیلا ترسیده یکیشون از موتورش میاد پایین میره طرف لیلا لیلا در رو باز میکنه یه پسر جوان سوار میشه همون پسری که توی قهوه خونه بین را بود باید نمیاد؟ بودم شب بخیر شب بخیر جوان میچرخه طرف صندلی عقب راست. که؟ من چیزی چیز میخواست از این تکیه یه همیشه باید یه پای بسط لنگ بشه پسر دستگیشوشو از دستش در میاره این خیلیش مونده میخوایی چیکار کار کنی؟ پول که نبیونه رو دست میدونم ولی من این هم من نیست میری. احلاف میشین شبم از تاریک شدیم کار دیگه این چه کاری فقط بوق میدینی؟ چی بوق نمیدین؟ پول خودمون نیست امانته شما امانتو زن تو دستشوی میریم دیگه به نظر آسون میان ایراد کار سختی <تصفح> میشه ای بکنن یه مقدر از این پولو بده این بچه ها شخص میخواین همه یه جا بدین یا برای که گلتون راحت شه؟ قانونا نمیشه بعد هر کسی مشخصی بدیم کتاب خودش خودشو داره اه؟ پستون به زور گرفتیم ازت نمیشه؟ چرا؟ نرات میشی؟ نه اما میگیم پخش کنیم بین همه میگم خب همین دیگه نرات نمیشی؟ نه نه اصلا بگم بیان چه اخ چه اخ میزنی برای شما چه کار کنه؟ نور بالا لیلا چراغ میزنه پسرای جوان با سر روی پوشیده میرن طرف صندوق اقل های پولو بر یکیشون میاد کنار شیشه سمت شاده بلین سر دره ای من بیم و پسر جوان هنوز همینجور موندن پسر برمیدرده طرف صندوق اقل مینا نگران میشه از ماشین پیاده میشه اینا همهشون رفتن یکیشون در نعیمت پیاد برسوند لازم نظیم شد خودت برسوند کجا؟ چی؟ کجا می‌خوای بری؟ گریه کردی سین. من منتظرت نیست. خیلی دوره. آره گفتم که اونور بیمارستان. نه؟ بیا. نه بیا خب اونور بیمارستان. یادش خودم بیرم چیزی نیست میرم خودم اینقدر بارو بیاد کسا میشینه فرما، حرکت میکنه اون میونه وسط جاده ماشین دور میشه. ا؟ مون. تند آقا پرید. اینو یادم رفت. لیلا بسته کوچیکو از پسر میگیره توی قبرستان کاوه با شدت مشغول کلنگ زدنه شولای آتیر زبانه میکشه با دست راست شالو گویدتر میکنه جنازه یه نفش به طرف قبلستان باید نگه میداره کاوه همچنان مشغول کندن زمینه بیلا با دو مرد چراقوف به دست نزدیک میشه یکی شما همون نگهبانی است بازرسیه آقا جمعش کن بریم با شما جمع خورم اساطتون آقای یه کمک کنیون چراسا دارم دنبال کردن خاکش کنم با خودمون آدم میاریم خاکش میکنیم ببرید آدم چیه سرباز اینجا سگو گوردی مگه نمیبینید تا بیای خورده مشکل چیه مشکل چیه تو بینای چیزی بگو وسیله میاریم میکنیم دستش میکنیم ولی نمیکنید بچرم وسط قبرستون خاکیت نمیبینید سگارو وسیله یاری چی من میمونم حواسمه وسیله بیارم شما اسل میکنید مشکلت این چهار تا حیونه بو یکی به طرف سگاتی میکنه کاپی نگهبانی ایست می توی <سطح> <برد ورد> <دارمست> یه اتاقک پاسگاه بین رو کابه روی تخت دراز شده یه پتوی سروازی هم روش کشیده شده لیلا کنار تخت به فیلم ضبط شده موبایل نگاه میکنه. بله؟ <متصف> بیاله سهونا ببین <متصف> بلن می در سینی صبحانه رو از نگفان میگیره بسر بایی ممنون میتونم یه رسو بیامتونم کاوه باش کارمون کاوه بیگار میشه نگفان یه سندگه یه خلوزی بر میباره به کنار پخ به کاوه میشینه ماشینتون رو پیدا کردن دهی بقیر لب مرز دیشب من خواب بودم گذرش زد و خرد شده عبداللهی رفته پیگیری کرده میگه این پسر رو چاقو زدن پولان رو بردشتن رفتن ولی با ماشینشون با کاری نداشتن عبداللهی صورت جلسه کرده فرستاده پزش قانونی ولی عقلش رسیده که از ماشین حرفی نزد خدا شکر اینجوری دیگه نه اسمی از پولان میاد وسط ن کفم و لفت باز شرمنده پس لیلا و کاوه به هم نگاه میکنن کاوه میخواد پاشه نه حالا چای رو بخوری نگه هم هفته رو از جیبش بیرون میاره بیده به لیلا این باید پیش خودتون بمینه اینجا پیداش کنن ما جرام میشه یه وزتی بسکویت گرجی که دوش ننشده پذیرانی ساده با دو دیوان چای و به توی رو ببخشید چیز دیگه ندارم تعرفتون کنم و گفتم با این بیسکویت ها لاغر یه تهبندهی بکنیم کاوه در جبر رو باز میکنه میگیره طرف لیلا لیلا یه بیسکویت برمیداره میخوره کاوه هم کاوه مشمول خوردنه لیلا مستقیم به نگفان مشینه و میگه فرمانده اگه بوبار چیه؟ میبینم برای بود برمونه خدمت سخت اگه بو رو بگو بگو مادر این اهل همین براس پیره ناخوشه ولی و ازش خیلی خوبه سفارش کرد بیایم یه بخشی از عرصشو خیرات کنیم اینجا بگو پولشون حلال بود نیتشون هم خیر بود وقیش هم بگی به خودم صبح زوده. خورشید هنوز طولو نکرده. نیلا و کاوه از باست که اومدن میرون به طرف ماشین برند. توی بلندی های جدیه کوهستانی در حال حرکت هست. نیلا نگه میداره کاوه پیاده میشه نیلا هم هر دو با هم میرن رو به جلو این فای مریسم به زخمی که همچنان در حال جان کندنه کاوه سیگار روشن میکنه و دور میشه نیلا کنار اسب استاده خوشی کرد. کفتی رو از جیبش بیگه میاره اسمو خلاس میکنه عشق از چشمش سر رازیه میشه ازیزان فیلم پذیرایی ساده رو شنیدید این برنامه با صدابرداری آقای علی حاجی نوروزی سردبیری و تهیه کنندگی آقای فرشاد آزرنیا تنظیم و اجرای من شمسی صادقی به شما تقدیم شد تا برنامه دیگر خدا نگهدار